بسم الله الرحمن الرحیم بنامه خداوندی بی اندازه مهربان نهایت بارشد ای مؤمنان بر خداوند و پیانبر او پیش دستی نکنید و از خداوند بترسید بیگمان خداوند شنا و داناست ای مؤمنان آواز خیش را بر آواز بر بلند نکنید و با او با آواز بلند سخن مگویید همانند اینکه یکی از شما بر برپیگر بانگ میزند تا ما با اعمال شما هبته شود و شما ملتصد نباشید بیگمان آنانی که در حضور فیانبر خدا آواز خود را پست میکنند کسانی اند که خداوند دلهایشان را بر پرهیزگاری آزموده است برای ایشان آمرزش و مرزد بزرگ است بیگمان آنانی که تو را از ورای حجره ها صدا می کنند اکثر ایشان بیعقلند. اگر واقعا ایشان صبر می کردند تا تو نزدشان بیرون می برایشان برای بهتر بود خداوند آمر زنده و مهربان است ای مؤمنان اگر فاسق خبری با شما بیاورد در مورد آن تحقیق کنید مبادا مردم را نادانسته زیان رسانی و بعد از آن برکرده خود پشیمان شوید بدانید که پیامبر خدا در میان شماست اگر او در بسیاری از امور از شما پیروی کند یقینا به مشقت دچار می شوید. مگر خداوند ایمان را نزد شما محبوب گردانید و آن را به دل های شما زیبا جلوه داد و برای شما کافر فسق یعنی فجور و نافرمانی را منفور قرار داد و چنین مردم هم ایشانند رهیاب اینها فضلیست از جانب خدا و نعمتی و خداوند دانا و بو با حکمت است اگر دو گروه از مسلمانان با یکدیگر با مقابله برخیزند در میانشان صلح کنید اما اگر یکی از ایشان بر دیگری تجاوز کرد با دسته‌ای که تجاوز کند مقابله نمایید تا به حکم خدا بازگردد چون بازگشت پس میانشان عادلانه صلح برقرار نمایید یعنی عدالت ورزی بیگمان خدا خداوند عدالت پیشگان را دوست دارد حقا که مؤمنان برادر یک دیگرند پس بین برادران اصلاح نمایید و از خدا بترسید تا باشد که مورد رحمت قرار داده دادشد ای مؤمنان هیچ گروهی از شما گروه دیگر را تمسخور نکند شاید آنها از اینها بهتر باشند و نه هم گروهی از زنان گروه زنانی دیگر را تمسخور کنند. شاید آنها از اینها بهتر باشند و عیب یک را مجوید و نه هم بر یک لقب لقبهای بد بمانید چی بد است نام فسق بعد از ایمان و کسانی که توبه نکنند هم ایچانند ستمگار ای مؤمنان از بسیاری گمانها خودداری ورزید واقعا بعضی از گمانها گناه است و هرگز بعضی شما تجسس عیب بعضی دیگر را مکنید و نه هم بعضی از شما بعضی دیگر را غیبت کند آیا یکی از شما خوش دارد گوشت برادر خود را که مرده است بخورد؟ واقعا از آن احساس کراهیت می کنید از خدا بترسید که خدا وان توب پذیر و مهربان است ای مردم بیگمان شما را از مردی و زنی آفریدید و شما را نژادها و قبایل گردانیدید تا یکدیگر را بشناسید بیگمان گرامیترین شما در نزد خدا پرهیزگارترین شماست حقها خدا خداوند دانا و, و آگاهست با دنشینان گفتند ایمان آوردید و ایشان بگو ایمان نیاوردید بلکه بگوید گردن نهادید و هنوز ایمان به دلهای شما وارد نشده است و اگر خدا و پیامبری او را فرمان برید چیزی را از اعمال شما کم نمی کند بگمون خداوند بخشای دو مهربان است واقعا آنان مؤمنند که به خداوند و پیامبری او ایمان آوردند و سپس به شک نیفتادند و به مال و جان خود در راه خدا جهاد کردند هم ایشانند راستگوی و راستکار بگو آیا خدا را از دینداری خود آگاه می گردانید؟ در حالی که خداوند تمام چیزهای را که در آسمانها و در زمین است می داند و خدا بر هر چیز داناست. بر تو در مورد مسلمان شدن خود منت می بگو بر من در مورد مسلمان شدن خود منت نه نهید بلکه خداوند بر شما منت می نهد بر اینکه شما را به سوی ایمان هدایت کرده است اگر راستگو هستید. بیگمان خداوند اسرار پنهان آسمان و زمین را می داند. خداوند به آنچه می کنید